این داستان گوی شیشهای یکی بود یکی نبود. زیر گنبد آبی آسمون زن جادوگری بود که سه تا پسر داشت. پسراشو از صمیم قلب دوست داشت. پیر زن جادوگر که می ترسید مبادا پسراش قدرت جادوی اونو ازش بگیرند، پسر اولشو به شکل یک اقاب درآورد. آورد اون روی سخره های یک کوه زندگی میکرد و اغلب اونو می که دور سخره می گرده یا در دور دست های آسمون اوج می گیره. دوم این پسر تبدیل به نهنگ شد و در اماغ دریا زندگی میکرد کرد. گهگاهی موج قوی از درون دریا بلند میشد و نهنگونو مثل ای در فضا پخش میکرد هر یک از پرادرها میتونستن روزی دو ساعت به شکل طبیعی خودشون برگردن. سومی که وضع دو برادر دید میترسید که مبادا مادرش اونو به شکل یه حیوان درنده در بیاره. مخفیانه از خونه فرار کرد. اون شنیده بود در قصر زیبایی به نام قصر آفتاب طلایی شاهزادهی زیبا زندگی میکنه که جادو شده. تصمیم گرفت هر طور که شده شاهزاده خانمو نجات بده. کار آمیزی بود تا اون موقع در این راه 23 نفر با وضعیتی وحشتناک کشته شده بودند و مدتها بود کسی جرأت نمیکرد در اطراف اون قصر آفتابی بشه ولی پسر سوم جادوگر که جوانی پردل و جرعت بود اراده کرده بود که به قصر آفتاب طلایی بره اون راه طولانی رو طی کرد و وارد جنگل انبوهی شد در جنگل سرگردون شد تا اینکه سرانجام راهشو به کلی گم کرد. ناگهان چشمش به دوتا قول افتاد که با دستشون بهش اشاره میکردن تا نزدیک اونا بشه. جوون نزدیکتر رفت. قولا پرسیدن که اونجا چی کار میکنه؟ اونم جواب داد که راهشو گم کرده. یکی از قولا بهش گفت نگران نباش ما راهو به تو نشون میدیم. ما همه این جنگلو مثل کف دستمون میشناسیم اما اول باید کمکمون بکنی. زور ما دوتا به یه اندازه است و ما یه کلاه کوچیک داریم که قراره به اونی که زورش بیشتر شد برسه ولی هیچ گدوم از ما نمیتونه به دیگری غلبه کنه شما آدمای کوچیک مثل ما زرنگ و باهوشین به همین دلیل از تو میخوایم با بیطرفی برای ما تصمیم بگیری جوون گفت این کلاه کهنه چه اهمیتی داره که برای تصاحب اون میجنگین؟ قولها گفتن کلاه کهنه پس خبر نداری که چقدر ارزش داره. به این میگن کلاه آرزو. هر کسی اونو سرش بذاره و هر جایی رو که آرزو بکنه، بیدرنگ به اونجا میره. جوان به اونا پیشنهاد کرد: کلاهو بدین به من. من از شما کمی فاصله میگیرم. شما دوتا بدوین هرکی زودتر به من رسید کلاه مال اونه اولا موافقت کردن جوان کلاه و برداشت و سرش گذاشت و از اونجا دور شد آنچنان به فکر شاهزاده خانم و قصرش بود که اصلا یادش رفت قولا رو صدا کنه داشت به راهش ادامه میداد. او اون در اون نزدیکی آهی کشید و گفت چه خوب بود اگه حالا در قصر آفتاب طلایی بودم هنوز کلمات بر زبانش جاری بود که خودش بر بالای تپه بلندی دید و در برابرش قصر آفتاب طلایی رو دید. در قصر باز بود. جوان وارد شد و از اتاقی به اتاق دیگه رفت. تا اینکه در یکی از اتاقا شاهزاده خانم دید ولی از دیدن اون خوشگش زد. شاهزاده چهرهی رنگ پریده، صورتی پرچین و چروک، چشمایی بدون فروغ و موهای خاکستری داشت. جوان با صدای بلند پرسید: تو همون شاهزاده خانومی که زیبایی زبان زده همه است؟ شاهزاده جواب داد: آره، این چهره واقعی من نیست. منو جادو کردن و آدما منو به این چهره میبینند اگه میخوای چهره واقعی منو ببینی باید به آینه نگاه کنی. آینه خطا نمی کنه و چهره حقیقی منو نشون میده. شاهزاده خانم اینو گفت و آینه رو به اون داد. وقتی جوون به اون آینه نگاه کرد، دختری دید با زیبایی بی‌نظیر، همونطوری که دیگران دربارش میگفتند. ولی از چهره زیبای اون اشک غم سرازیر بود. جوون پرسید: چطوری میتونم تو رو نجات بدم؟ من از هیچ و هیچ چیزی واهمه ندارم. شاهصاد خانم جواب داد، اگه کسی بتونه گلوله بلورین به دست بیاره و اون رو جلوی جادوگر بگیره، قدرت جادویش از بین میره و من بدون درنگ آزاد میشم و به شکل اولیهی خودم برمیگردم. شاهصاد خانم ادامه داد، تا حالا جوونای زیادی جون خودشونو از دست دادن، اگه تو هم جسارت به خرج بدی و توی این راه بری و خونت ریخته بشه برای من خیلی دردناکه جوون جواب داد هیچ خطری مانع من نمیشه فقط بگو باید چیکار کنم شاهزاده خانم گفت همه چیزو میگم تو باید به بلندترین نقطه کوهی بری که این قصر در دامنه اون واقع شده در اونجا با یک گاومیش وحشی روبرو میشی که کنار چشمه ای ایستاده تو باید با اون حیوان وحشی گلاویز بشی اگه خوششانس باشی و اونو بکشی از درون جسد حیوان یه ققنوس به پرواز در میاد باید این حیوانو نابود کنی شکمشو پاره کنی و تخم گرمی رو بیرون بیاری اگه این تخمو بشکنی به جای زرده گوی بلوری وسطش میبینی خیلی باید مراقب باشی که این گوی به زمین نیفته اگه بیفته انفجاری رخ میده که همه دوروبرتو نابود میکنه. در این صورت خود تخم و گوی بلوری وسط اون زوب میشه و همه زحماتت به هدر میره. جوان بعد از شنیدن این دستور یک لحظه هم درنگ نکرد. در نخستین مرحله گاو میشو پیدا کرد که کنار چشمه مشغول ماق کشیدن بود. درگیری با این حیوان دو ساعت طول کشید. پس از چندین ضربه شمشیر جسدش روی پای جوان افتاد. چند لحظه بعد پرنده خشمگین از جسد گاومیش برخاست و تلاش کرد پرواز کنون از اونجا دور بشه. ولی برادری که با جادوی جادوگر به شکل اقاب در اومده بود به یاری برادر جوونترش به ققنوس حمله کرد اونو به طرف دریا کشوند و با ضربه های پی در پی منقار اونو مجبور کرد تخمشو بندازه تخم در دریا فرود نیومد بلکه روی کلبه ماهیگیری در اون نزدیکی افتاد ناگهان کلبه و همه چیزای دورش تومه آتیش شدند اون موقع بود که امواج عظیمی از آب دریا روونه کلبه شد و در یک چشم به هم زدن شعله های آتش فروکش کرد این کار نهنگ برادر دومی بود که در اعماق دریا به سر میبرد و برای کمک به برادر جوان ترش آمده بود همین که آتش خاموش شد جوون در بین آوارها و خاکسترها جستجو کرد و از بخت خوبش تونست تخم رو سالم از بین گلولای در بیاره. تخم زوب نشده بود، فقط هجوم امواج پوسته بیرونی اونو شکسته بود. برای همین جوون به راحتی تونست به گوی بلورین وسط اون دست پیدا کنه. اون دیگه صبر نکرد. فوری نزد جادوگر رفت و گوی بلورین و جلوی صورتش گرفت. جادوگر گفت: دیگه قدرت جادویم نابود شده. از این به بعد تو پادشاه سرزمین آفتاب طلایی هستی. علاوه بر این هر موقع بخوای میتونی برادراتو به حالت اولشون در بیاری. جوان به قصر برگشت وارد اتاق شاهزاده خانم شد و شاهزاده خانم را دید که در کمال زیبایی و وجاهت در اتاقش نشسته. دو تا با قلبی سرشار از شادی حلقه های رو مبادله کردند و قسم یاد کردند که با عشقی جافدانی در کنار هم زندگی کنند سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب